بسم الله الرحمن الرحیم قصه ظهر جمعه یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود سالها قبل در گوشه ای از این جهان بزرگ پیرمرد عطاری زندگی میکرد که در طول عمر پر که از خدا گرفته بود لحظه ای پای فریب و نیرنگ جوانهای سبز نیتش رو لگتکوب نکرده بود و هنوز دندون طمع در دهنش نرویده بود زبونش با دروغ و ریا آشنایی نداشت همچنان که نگاهش با حسرت بیگانه بود و اگرچه از هفت طبقه آسمان حتی یک ستاره هم نصیبش نشده بود اما از دریا و یه جرف دانش و حکمت هزاران هزار گوهر درخشان سید کرده بود. این پیرمرد اتار یک پسر داشت به نام جمال که لحظه ای در تعلیم و تربیتش کتایی نکرده بود و الحق که خیلی خوبم از عهده این کار برومده بود. جمال که تازه پا به سن جوانی گذاشته بود، درس و زندگی رو به خوبی در محضر پدر آموخته بود و با جدیت در مسیر خودشناسی و خداشناسی گام برمیداشت بله عزیزان به این ترتیب روزگار میگذشت تا اینکه روزی از روزها وقتی جمال به همراه پدرش برای فروش گیاهان دارویی به شهر رفته بود ناگهان قراولان حکومتی به بازار ریختند و مردم رو زدن و از سر راه به عقب روندند و با فریاد کورباش و دورباش بازار رو قرخ کردند که جناب حاکم میخواد از اون شهر عبور کنه خب جمال که تا اون زمان حاکم رو ندیده بود خودش رو از لابلای جمعیت جلو کشید و پشت سر نیزه داران با کنجکاوی منتظر موند در همین وقت تبل ها به صدا در و شیپورها نواخته شد و حاکم سوار بر کجاوه‌ی مخصوصش به همراه دهها نوکر و خدمتکار وارد بازار شد. اون وقت چند نفر از سربازان به میون مردم افتادن و با تهدید و به زور ضربات تازیانه اونها را به کرنش کردن و بر خاک افتادن در برابر حاکم وادار کردن. بله دوستان و این در حالی بود که جمال با دیدن لباس فاخر و پرزرق و برق حاکم و تاج جواهر نشونه او مات و مبهوت بر جای خودش مونده بود. بله اون چه که از شکوه و جلال حاکم بر چشم جمال نشست سخت در ذهنش نقش بست و سودای حکومت رو در سرش انداخت. باری از اون روز به بعد، کار جمال شد یک گوشه نشستن و مرواریدهای خیال رو نخ کردن و تاج زرین آرزوها رو بر سر گذاشتن. او به زودی از آینه قدی و قدیمی گوشه کلبشون که یادگاری برجامونده از نیاکانشون بود و چنان که از پدر آموخته بود سالها پریشانی روح و جسمش رو در مقابل اون شونه زده بود قهر کرد و خودش رو اونطور که آرزو داشت تصور کرد. و اما پیرمرد که چونین دید نگران شد و زبان به پند و اندرز باز کرد تا بلکه پسر به خودش بیاد و باز با آینه آشتی کنه و چهره حقیقی خودش رو در اون به تماشا بیسته ولی افسوس که سخنان او به گوش پسر نرفت که نرفت القصه روزها به این منوال گذشت تا اینکه یک شب پیرمرد اتار به کنار جمال اومد و گفت الاخره از اون چه که می بر سرت اومد پس لازمه که حقیقتی رو بر تو آشکار کنم بعد به آینه گوشه اتاق اشاره کرد و گفت همین حالا به کنار آینه برو و خوب نگاه کن ببین در اون چی می جمال بی حوصله گفت دست بردارید پدر بذارید با خیالات خودم سرگرم باشم این آینه دیگه برای من هیچ چیز قابل دیدنی نداره پیرمرد گفت ولی این دیگه یک آینه نیست بلکه پنجره ایه روی دنیایی که تو از آمال و آرزوهای خودت ساختی جمال ابروهاشو در هم تابوند و گفت آیا قصد شوخی کردن با منو دارید پدر پیرمرد اتار آهی کشید و گفت بدون که لازمه رسیدن به زور و زر و قدرت و سروت خود رو فراموش کردنه یعنی از یاد بردن اینکه که کی هستیم برای چی به دنیا آمدیم و عاقبت به کجا میریم و تو چه آسون خودت رو فراموش کردی جمال بلند شد و آروم به طرف آینه رفت رو در روی اون که قرار گرفت با کمال تعجب، دیگه تصویر خودش رو ندید برگشت و فانوس رو از سر تاخشه برداشت و باز به کنار آینه اومد دستی به صورتش کشید و هی عقب و جلو رفت و کجراست شد اما بیفایده بود اون چه که در آینه به چشم میخورد تصویر فانوسی بود که گویی در فضای کلبه میون هوا و زمین آویزون مونده بود اصلا مثل اینکه جمالی دیگه وجود نداشت بعد از لحظاتی ناگهان مه متراکم و گذرایی، فضای آینه رو پر کرد و بعد منظره کاخ با عظمتی در پس اون نمایون شد. خشت های و سنگ قیمتی به کار رفته در کاخ چنان می که کلبه و غرق در نور کردند و کورسوی فانوس رو از رونق انداختند جمال که تا اون زمان فقط در تخیلاتش تونسته بود از خیشتهای تلا چنان کاخ شگفتی انگیزی رو بسازه گناهاش رو به چنگ خراشید و به ضرب سیلی سرخ کرد و وقتی که مطمئن شد اینها دیگه خواب و خیال نیست به حرف پدرش ایمان آورد بله همه چیز همونطور آماده شده بود که همیشه حسرتش رو خورده بود همون کاخ طلایی با برش ها و های مرمرین و بلند در میون یک باغ بزرگ سرسبز و همون نیزه به دست و کماندارانی که حالا با لباس های آراسته و کلاههای مخملی سرخ رنگ در حالی که پرچم های رنگارنگی در دست داشتن به پیش بازش جمال نه دلش میومد که نگاه از آینه برداره و نه جرأت ایستادن در اونجا رو داشت. بین موندن و گریختن سرگردون مونده بود که سربازها به آینه رسیده اون وقت مرد چهره آشنایی که همیشه در خیالاتش سمت صدر و وزارت رو بر عهده داشت از اسب پایین پرید و به مرد دیگه‌ای که طبق زرینی رو روی سر میبرد اشاره کرد تا جلو بیا مرد طبق چند قدمی جلو اومد و طبق زرین رو با احترام مقابل جمال به زمین گذاشت و بعد عقب عقب برگشت. توی طبق یک دست جامعه فاخر و یک کفش جواهر نشان و یک کلاه زریدوزی شده به چشم میخورد. وزیر تعظیمی کرد و لبخند زنان به طبق و کجاوهی که اون رو با پولک ها و نوارهای رنگارنگ تزیین کرده بودن اشاره کرد. جمال که حالا دیگه دل و جرعتی پیدا کرده بود فانوس را بر زمین گذاشت آهسته دستش رو به طرف آینه پیش برد و مثل اینکه دست از ای بیرون برده باشه هوای خونک اون طرف آینه روی پوستش نشست جمال یک لحظه ترسید و دستش رو بی اختیار کشید و به پدرش نگاه کرد پیرمرد دعتار گفت مگه این؟ همون چیزی نیست که در حسرتش میسوختی پس دیگه معطله چی هستی جمال برای آخرین بار به پدر نگاهی انداخت و گفت قول میدم که خیلی زود برگردم و شما را هم پیش خودم ببرم بعد به خودش جرعتی داد و از آینه عبور کرد و قدم به اون طرف گذاشت اون وقت دنیا برای او به یک باره دگرگون شد همه چیز به صدا در اومد و هیاهوی قراولان و شیهه عصبها و نوای دهل و سرنایی که بر بلندترین برج قصر نواخته میشد گوشهاش رو پر کرد. وزیر به اون نزدیک شد و با همون لبخندش گفت به کشور خودتون خوش اومدید سرورم. بقیه هم کرنشکنان و یک صدا بهش خوش آمد گفتن. جمال در حلقه سربازها و در کنار وزیر به طرف قصر به حرکت در اومد. او اگرچه دیگه دنیای عجیبی رو که در اون گام گذاشته بود باور کرده بود اما حس عجیب عجیبتری در دلش جوونه زده بود پیوسته خیال میکرد که از درون توهی شده و چیز با ارزشی رو در اون طرف آینه درون کل به جا گذاشته ولی هر چه فکر میکرد عقلش به جایی قد نمیده قصر که رسیدن او رو یک راست به تالار بزرگ گردن و در میون همه همه ده ها نفر از مقامات کشوری و لشکری روی تخت آراسته حکومت نشوندند و تاج قدرت رو بر سرش گذاشتن بعدم هم همه بر سر خان و سخاوت آکم جدید مهمون شدند و میون تالار رو برای هنرنمایی رامشگران و خونیاگرانی که با سازهای عجیب و غریبشون گلها را هم برقص ومی داشتن خالی کرده مجلس جشن و پایکوبی تا پاسی از شب ادامه پیدا کرد تا اینکه جمال به خمیازه کشیدن افتاد و گردنش که از سنگینی تاج درد گرفته بود به یک سو خم شد در این هنگام وزیر سرپای ایستاد و با سه مرتبه دستها را بر هم کوبیدن یک مرتبه سکوت رو بر تالار حکم فرما کرد و بعدم همه رو از اونجا به بیرون روند با خالی شدن تالار جمال تاج رو از سر برداشت و نفس راحتی کشید و گفت هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردم که تا این حد از خوردن و آشامیدن خسته و دل زده بشه. وزیر همچنان که تاج رو از دست جمال می گرفت خنده چاپلوسانهی کرد و گفت سرورم ناراحت نباشید برای اینکه تا چند روز دیگه به همه چیز عادت می کنید. شرکت در چنین مجالسی جزء جدا این ناپذیر زندگی فرمان روائیه. بعد به او کمک کرد تا به اتاق خواب بره. بله، یاران جمال روی تخت دراز کشید ولی اون شب تا صبح خواب به چشمش نیومد. او مدام در بسترش میجم بید و از این پهلو به اون پهلو میغلید ولی حس عجیب چیزی رو درون کل به جا گذاشتن، پرنده خواب رو از آشیونه مجگانش پر میداد. خلاصه خورشید که بالا اومد جمال سروازش رو مرتب کرد و کوشید تا اثر بیخوابی و آشفتگی شب قبل رو در صورتش بنهان کنه ولی اون حس لحظه به لحظه با دردی که شقیقهاش رو میگزید شدت می گرفت. تا اونجا که سر بسات صبح و اون همه غذای جور و جور و لذیذ اشتهاش رو از دست داد. وزیر که حال و روز او را رو این طور دید گفت حاکم به سلامت این قبار اندوه چیه که این چون این چهره مبارک رو مکدر کرده؟ جمال ناچار لب به سخن باز کرد و از دردش حرف زد و راه علاجی خواست. وزیر که چنین شنید خندید و گفت در شعن حاکمی شما نیست که به خاطر چیزهای پست و کوچیک انگشت حسرت دندون بگزید مطمئن باشید اون چیزی که زینت بخش به یه درویشانه در قصر حکام چیزی جز اسباب خنده و مایه سرشکستگی نیست پس چه بهتر که از اون زندگی فقیرانه چیزی به اینجا نیاوردید جمال سرخ شد و مشت بر زمین کوبید و گفت چطور میتونی درباره یه چیزی که هرگز ندیدی اینطور داوری کنی؟ بعد چشماش رو بست و فکری کرد و گفت اون هرچی که بود به درخشندگی یک گوهر ناب بود وزیر تعظیمی کرد و گفت بنده رو ببخشید سرورم قصد جسارت نداشتم ولی اگه قدم رنجه کنید و افتخار همراهی رو به این حقیر بدید به جای میریم که در اونجا حتما گمشده خودتون رو از یاد میبرید جوان موافقت کرد و به راه افتاد جمال و وزیر به اتفاق از تالار بیرون رفتند. راهروهای دراز رو پشت سر و از راه پله های پیش در پیش سرازیر شدند تا به خزانه قصر رسیدند. با اشاره وزیر خزاندار در بزرگ و سنگین خزانه رو باز کرد اون وقت وزیر کیسه های زر و خمره های جواهر و سنگ های گرانبه های جفته همچیده شده رو به جمال نشون داد و گفت جای هیچ نگرانی نیست که از این پس درخشندهترین گوهرهای جهان در اختیار شماست جمال ساعتی در گوشه و کنار خزانه پرسه زد توی خمره ها سرک کشید و مشت مشت زر و جواهر گرانبها ها را زیر و رو کرد اما هر گوهری رو که بر می داشت، اون رو کمبهاتر و ناچیزتر از گوهری که در خیالش از دست داده بود تصور می کرد بالاخره هم خسته و ناامید گوشه نشست و گفت نه، بیفایده است هیچ کدوم از این سنگهای رنگا رنگ و جور واجور نمیتونه جای گوهر من رو بگیره وزیر که با تردید و دودلی به حرفهای جمال گوش میداد ای کرد و گفت اندوه به دلتون راه ندید قربان که یأس سنا آمیدی در این مکان اصلا معنا نداره همینک زمان دیدن گوهر شبچراغیه که همه گوهرهای جهان در برابرش خرده سنگ های بی بیش نیستن و دوباره با اشاره او خزاندار کلید بزرگی رو از میون سایر کلیدهاش به دست گرفت و با اون قفل در فولادی انتهای خزانه رو باز کرد به محض باز شدن در و تابیدن نور مشعلها به درون اتاق تلعلوه هفت رنگ چشم نوازی به بیرون چشم جمال رو خیره کرد جمال؟ شیفته و خیره اون بر غجیب آهستگان برداشت و در برابر اتاق از اون که دید چشمهاش گرد شد بله روی سکوی مخمل پوش وسط اتاق الماس درشت و زیبایی قرار داشت که پرتوه دیده نوازش فضای اتاق رو پر کرده بود جمال الماس رو با احتیاط برداشت و ناگهان فریاد زد پیداش کردم، بالاخره پیداش کردم وزیرم نفسی به راحتی کشید و به دنبال جمال که حالا الماس رو بالای سرش گرفته بود و فریاد کشان از پله ها بالا می رفت دوید و به محض رسیدن به تالار بزرگ قصر دستور داد تا به یوم نرف اکسالت حاکم بزمی برقرار کنه. در یک چشم برهم زدن صوت ایشونوش آماده شد و جمال که دمی چشم از الماس بر نمی خوشحال و خندون بر تخت نشست و به خوشگذرونی پرداخت بعد از گذشت ساعاتی که نوازندگان نغمههای های رو نواختن و تردستان و چشمبندان بندان کارهای شگفتینگیزشون رو انجام دادن و ستایشگران اشعاری در ستایش حاکم جدید خوندن و کیسه کیسه سله و پاداش دریافت کردن وزیر به کنار جمال اومد و بعد از اینکه بار دیگه از بهبودی و اظهار خوشنودی کرد گفت و اما شیرین ترین و ترین لحظات حکومتی یک حاکم لحظه مجازات کردن تاغیان و دشمنان حکومت اون وقت داروقه که از بس خورده و آشامیده بود به سختی نفس میکشید با اون شکم برآمده به زحمت در مقابل جمال تعظیم کرد و برای صادر کردن حکم مجازات مجرمین روی جایگاه مخصوص که یک تخت بزرگ با فرشی زربفت بود ولو شد نخستین مجرم جوون جندپوشی بود که به جرم تیشه زدن بر کوهی که به کوه بیستون معروف بود، به بند کشیده شده بود. پس از اعلام جرائم او، داروغ تو در توی سکسکش گفت چون سالهاست که صدای تیشه این جوون مجنون خواب مردم شهر رو به هم زده، همینطور با این کارش باعث فرو ریختن و از هم پاشیدن بخش عظیمی از سنگهای سیاه اون شده، حکم به تبعید او به لجنزار بیرون شهر میدیم تا ما بقیه عمرش رو به خوش کردن اونجا سپری کنه زندانی دوم تنها آهنگری بود که هنوز تن به ساختن زنجیر برای زندان شهر نداده بود و بدتر از اون اینکه هر روز یک رشته زنجیر از دیگر آهنگرها می خرید و اون رو در وسط میدون شهر محکم به دور بازوان ستفر خودش می‌پیچید. و با یک تکون پارش می بله. داروقه بیدرنگ حکم کرد که از این پس مرد آهنگر باید به هنگام پاره کردن زنجیرها چون معرکه گیران داد بزنه و بازارگر می کنه و مثل اونها کلاه دست بگیره و دور بیفته و سکه جمع کنه در پایان این رو هم اضافه کرد که چونان چه مرد آهنگر از این کار سر باز زد خیلی زود او را بگیرن و در همون میدون شهر بازوهاش رو قطع کنن. بعد از صدور این حکم در میون احسند احسند گفتن هزار نوبت به سومین زندانی رسید. او مرد حکیمی بود که در طول عمرش هیچ پرندهی رو در قفص زندانی نکرده بود و زبان صد نو پرنده رو به خوبی میدونست. اما گناه نابخشودنی او در اختیار داشتن آینهی بود که ادعا می کرد سیمرغ مرغ ای رو بیشه در اون دید و تا اون وقت چندین نفر از جوانهای ساده دل شهر رو با این نیرنگ به مقابل آینش کشونده بود و سر به نیستشون کرده بود در این وقت داروغ باودی به قبقب انداخت و زود حکیم رو به قتل و جادو متهم کرد و دستور داد تا پس از شکستن و خرد کردن آینش او را رو اونقدر روی خورد شیشه ها بکشونن تا نابود بشه حکم ها به زودی توسط کاتب نوشته شد و به همراه حکم مجازات جوان کوهکن و مرد آهنگر برای مهر شدن به نزد جمال آورده شد جمال که تا اون وقت دهنش از تجب باز مونده بود با دلسوزی سه رو برانداز کرد و ناگهان احساس کرد که از دیرباز با قصه اونها آشناست. پس شقیقهاش تیر کشید و درد دوباره امانش رو برید. وزیر که متوجه احوال پریشان جمال شده بود، مهر حکومتی رو با جای مخصوصش مقابل او گذاشت و آهسته گفت قربان به صلاح شما نیست که براحتی مغلوب احساساتتون بشید. پس بدون اندیشه و درنگ چشمهای مبارک رو ببندید و این احکام رو مهر کنید و مهر رو به زور به دست او داد و در حالی که به الماس درخشان اشاره میکرد گفت به گمون حقیر بهتره در اندیشه بقای قدرت و ثروت خودتون باشید و فکر افراد بی پا رو از سر بیرون کنید حاکم خاموش بود و کاخ در سکوت فرو رفته بود جمال لحظاتی در خودش بود، او چشمهاش رو بست و مهر حکومتی رو در مشت فشرد ولی هرچه تلاش کردید که انجام این کار از احده او خارجه و یک نیروی ناشناخته جلوش رو میگیره پس چشمهاش رو باز کرد و مهر رو به گوشه انداخت و بر سر میرغضب که بیتاب برای اجرای حکم مقابل آینه ایستاده بود فریاد زد و به او دستور داد تا سر جاش برگرده اون وقت از بلند شد و در میون بهت و ایرت درباریان به طرف آینه رفت. تالار در سکوتی ژرف فرو رفته بود. در میون تنها وزیر چون مارگزیره ها به خودش میپیچید و بیتابی میکرد. جمال بار دیگه به چهره آشنای محکومین نگاهی انداخت و قصه هر کدومشون رو به یاد آورد. اون وقت لبخندی زد و رو در روی آینه که ایستاد و چشمش که به عکس خودش افتاد، به آب سردی بر التهاب درونش ریخته شد درخشش الماس از پیش دیدگانش فرو شسته شد و اونو مثل تکه سنگی پست و حقیر دید و به این ترتیب زرگ و برق کاخ از پیش چشمش محو شد او ناگهان به نظرش رسید که گم شده ی حقیقیش رو پیدا کرده در این هنگام مه گذرای آینه رو پوشون و بعد در پس اون نمایی از کلبه خودشون آشکار شد جمال دستهاش را به طرف آینه دراز کرد حکیم به نشونه تصدیق سری جنبوند و خورسند شد وزیر فریاد کشید به او توجهی نکنید قربان به تخت خودتون برگردید و اجازه بدید کارها همونجور جور که به صلاح شاهی شماست انجام بشه ولی جمال که حالا با تمام وجود به طرف آینه جذب می شد، قدم به درون آینه گذاشت و در یک لحظه خودش رو درون کلبه و در مقابل پدرش دید وزه کلبه هیچ فرقی نکرده بود انگار تمام اون وقایع به دمی گذشته بود پیرمرد اتار با دیدن جمال خاک افتاد و سجده شکری کرد و خدا رو سپاس گفت جمالم فانوس رو از زمین برداشت و به چهره درخشان خودش درون آینه لبخند زد